اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام کتابی انزله الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى <تصفيق> النور باذن ربهم باذن صراط العزيز الحمید به نام خدوند بخشنده بخشایشگر الف لام را این کتابی است که بر تو نازل کردیم تا مردم را از تاریکی های شرک و ظلم و جهل به سوی روشنایی ایمان و عدل و آگاهی به فرمان پروردگارشان درآوری به سوی راه خداوند توانا و ستوده اللهی له ما فی و ما في الارض و ویل من عذاب شدید همان خدایی که آنچه در آسمان ها و آنکه در زمین است از آن اوست وای بر کافران از مجازات شدید الهی الذین يستحبون الْحَيَاتَ الدنیا علی الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ و یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا اولائی که في ضلال بعید همانها که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح میدهند و مردم را از راه خدا باز میدارند و میخواهند راه حق را منحرف سازند آنها در گمراهی دوری هستند و ما ارسلنا رسولا الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا حقایق را برای آنها آشکار سازد سپس خدا هر کس را بخواهد و مستحق بداند گمراه و هر کس را بخواهد و شایسته بداند هدایت میکند و او توانا و حکیم است ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم, وذكرهم بأيام الله إِنَّ في ذَلِكَ لآيات لكل صبار شكور ما موسى را با خد فرستاديم و دستور دادیم قومت را از ظلمات به نور بیرون آر و ایام الله را به آنان یادآوری کن در این نشانه است برای هر صبر شکرگزار و اذ قال موسی لقومه اذكروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم اذ ان من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم و خاطر بیاور هنگامی را که موسی به قومش گفت نعمت خدا را بر خود به یاد داشته باشید زمانی که شما را از چنگال آل فرعون رهایی بخشید همانها که شما را به بدترین وجی عذاب میکردند، پسرانتان را سر میبریدند و زنانتان را برای خدمتکاری زنده می گذاشتند و در این آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما بود وإذن ربكم لِ شتم لا عزلا لقوم ولا این كفقم ان عذبی شلیله و هم همچنینونین بیاورید هنگامی را که پروردگارتان اعلام داشت اگر شکر گذاری کنید نحمت خود را بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسی پاسی کنید. مجازاتم شدید است. و گفت موسای تکفرو آت و فی الأرض جميع و في الأرض جميع فإن الله لغني حمید و موسا به بانی اسرائیل گفت: اگر شما و همه مردم روی زمین کافر شوید. به خدا زیانی نمی رسد. چرا که خداوند بی و ستوده است الم یأتیکم نبأ الذین من قبلكم قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا فردوا أيديهم في أفواهم وقالوا قالوا و كفرنا بما أرسلت به وإن إن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. آيا oh, yeah. خبر کسانی که پیش از شما بودند به شما نرسیده؟ قوم نوح و عاد و سمود و آنها که پس از ایشان بودند. همانها که جز خداوند از آنان آگاه نیست. پیام دلایل روشن برای آنان آوردند. ولی آنها از روی تعجب و استهزا دست بر دهان گرفتند و گفتند، ما به آنچه شما به آن فرستاده شده اید کافرین و نسبت به آنچه ما را به سوی آن میخوانید شک و تردید داریم قالت رسولهم افی الله شک فاطر السماوات والأرض یدعوكم لیغفر لكم من ذنوبكم و يؤخركم ويؤخركم يؤخركم إلى أجر مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون تريدون أن تصدون عم كان يعبد آباؤنا فأتونا, فأتونا بسلطان مبين رسولان آنها گفتند آیا در خدا شک است خدایی که آسمانها و زمین را آفریده او شما را دعوت میکند تا بخشی از گناهانتان را ببخشد و تا موعد مقرری شما را باقی گذارد آنها گفتند ما اینها را نمیفهمیم همین اندازه میدانیم که شما انسانهایی همانند ما هستید میخواهید ما را از آنکه پدرانمان میپرستیدند باز دارید شما دلیل و معجزهٔ روشنی برای ما بیاورید قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن, ولكن الله یمن على من یشاء من عباده و ما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون پیامبرانشان به آنها گفتند درست است که ما بشری همانند شما هستیم ولی خداوند بر هر کس از بندگانش بخواهد و شایست بداند نعمت می بخشد و مقام رسالت عطا می کند و ما هرگز نمی توانیم جز به فرمان خدا بیاوریم و از تهدیدهای شما نمی حراسیم. افراد با ایمان باید تنها بر خدا توکل کنند و ما لنا الا الله و هدانا سبلنا ولا عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راههای سعادت رهبری کرده است و ما به طور مسلم در برابر آزارهای شما صبر خواهیم کرده و دست از رسالت خیش بر نمی داریم و توکل کنندگان باید فقط بر خدا توکل کنند وقال الذین كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا ام لا فی ملتنا فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ ربهم لنهلكن الظَّالِمِينَ ولی کافران به پیامبران خود گفتند ما قطعا شما را از سرزمین خود بیرون خواهیم کرد مگر این که به آین ما بازگردید در این حال پروردگارشان به آنها وحی فرستاد که ما ظالمان را حلاک میکنیم. ولا نسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامی و خاف و, و شما را بعد از آنان در زمین سکونت خواهیم داد این موفقیت برای کسی است که از مقام عدالت من بترسد و از عذاب من بیمناک باشد و استفتح و كل جبار عنید و آنها از خدا تقاضای فتح و پیروزی بر برکفار کردند و سرانجام هر گردن منحرفی نومید و نابود شد من ورائی جهنم و يسقا و یسقا من مائن صدید به دنبال او جهنم خواهد بود و از آب بدبوی متعفنی نوشانده می شود یتجرعه و لا یکاد یسیغه و یأتیه الموت و الموت من كل مكان و ما هو بمیت و من ورائه عذاب غليظ. به زحمت جرعه جرعه آن را سر میکشد و هرگز حاضر نیست به میل خود آن را بیاش آمد و مرگ از هر جا به سراغ او می آید ولی با این همه نمی میرد و بدون آن آزار شدیدی است. مثال الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. اعمال کسانی که به پروردگارشان کافر شدند همچون خاکستریست در برابر توند باد در یک روز طوفانی آنها توانایی ندارند کمترین چیزی از آنچه را انجام دادهاند به دست آورند و این همان گمراهی دور و دراز است الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد. آیا ندیدی خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفریده است اگر بخواهد شما را میبرد و خلق تازعی می میآورد و ما ذلک علی الله بعزیز و این کار برای خدا مشکل نیست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 قالله اوهدن الله ولهد نک سو اون عنا جز صبرعمل نام مخیص و در قیامت همهی آنها در برابر خدا ظاهر میشوند. در این هنگام زعفا دنبال روان نادان به مستکبران و رهبران گمراه میگویند، ما پیروان شما بودیم آیا شما حاضرید سهمی از عذاب الهی را بپذیرید و از ما بردارید آنها میگویند اگر خدا ما را هدایت کرده بود ما نیز شما را هدایت میکردیم ولی کار از اینها گذشته است چه بیتابی کنیم و چه شکیبایی تفاوتی برای ما ندارد راه گریزی برای ما نیست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 فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُ أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُ لِمِنْ قَبْلِ این الظالمین لهم عذاب و شیطان هنگامی که کار تمام می شود می گوید خداوند به شما وعده حق داد و من به شما وعده باطل دادم و تخلف کردم من شما تسلطی نداشتم جز اینکه دعوتتان کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید این مرا سرزنش نکنید خود را سرزنش کنید نه من فریاد شما هستم و نه شما فریاد من من نسبت به شرک شما درباره خود که از قبل داشتید و اطاعت مرا هم ردیف اطاعت خدا قرار دادید بیزار و کافرم مسلما ستم کاران عذاب دردناکی دارند. و ادخل الذين الذينَ وعملوا الصالحات جنات, جنات تجري من تحتها الأار خالدين فيها خالدين فيها بذ فيها سلام و کسانی را که ایمان آوردند. و اعمال صالح انجام دادند به باغهای بهشت وارد میکنند. باغهایی که نهرها از زیر درختانش جاری است به ازن پروردگارشان جاودانه در آن میمانند و تهیت آنها در آن سلام است <تصال> آیا ندیدی چگونه خداوند؟ کلمه طیبه و گفتار پاکیزه را به درخت پاکیزه ای تشوییز کرده؟ که ریشه آن در زمین ثابت و شاخه آن در آسمان است. توتی او كلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. خرزم میوه خود را به اذن پروردگارش میدهد و خداوند برای مردم مثل ها میزند. شاید متذکر شوند و پند گیرند و مثل کلمت خبیثت که شجرت خبیثت لیجی دست من سوق الارض ما لها،, ما لها من قرار همچنین کلمه خبیثه و سخن آلوده را به درخت ناپاکی تشبیه کرده که از روی زمین برکنده شده و قرار و صباتی ندارد یثبیت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء خداوند کسانی را که ایمان آوردند به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان استوار می‌دارد هم در این جهان و هم در سرای دیگر و ستمگران را گمراه می‌سازد و لطف خود را از آنها برمیگیرد. خداوند هر کار را بخواهد و مصلحت بداند انجام می‌دهد الله <تصفيق> آیا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند و قوم خود را به سرای نیستی و نابودی کاندند؟ سرای نیستی و نابودی؟ همان جهنم است که آنها در آتش آن وارد می شوند و بد قرارگاهی است و لله عن سبيله قل تمتعو فإن مصيركم إلى النار آنها برای خدا همتایانی قرار داده اند تا مردم را از راه او منحرف و گمراه سازند بگو چند روزی از زندگی دنیا و لذات آن بهره گیرید اما عاقبت کار شما به سوی آتش دوزخ است قل لعبادي الذین آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا ينفقوا مما رزقناهم سرا و من قبل من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال به بندگان من که ایمان آورده اند بگو نماز را برپا دارند و از آنکه به آنها روزی داده ایم پنهان و آشکار انفاق کنند پیش از آنکه روزی فرا رسد که نه در آن خرید و فروش است و نه دوستی الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ما فَأَخْرَجَبِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَرِ خداوند همان است که آسمان هاب و زمین را آفرید و از آسمان آبی نازل کرد و با آن میوه های مختلف را برای روزی شما از زمین بیرون آورد و کشتیها را مسخر شما گردانید تا بر صفحه دریا به فرمان او حرکت کنند و نهرها را نیز مسخر شما نمود. و سخر لكم وسخر لكم الليل و, و ماه را که با برنامه منظمی در کارند به تسخیر شما درآورد و شب و روز را نیز مسخر شما ساخت و اتاکم من کل ما سألتموه و ان تعبد نعمه الله لا تحسوها إن الانسان لظلوم كفار و از هر چیزی که از او خواستید به شما داد و اگر نعمتهای خدا را بشمارید هرگز آنها را شماره نتوانید کرد انسان ستمگر و ناسپاس است و اذ قال ابراهیم ربی جعل هذا البلد آمنا و جنوب ان و بنی انعبد به یاد آورید زمانی را که ابراهیم گفت پروردگارا این شهر مکه را شهر امنی قرار ده و من و فرزندانم را از پرستش بطها دور نگاه دار ربی انهن اضلل کثیر من الناس فمن تبعنی فاندهو من و من عصانی فإن لك غفور رحیم پروردگارا آنها بودها بسیاری از مردم را گمراه ساختند هر کس از من پیروی کند از من است و هر کس نافرمانی من کند تو بخشنده و مهربانی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 فجعل افئیدتا من انداس تهوی ایلیهم و ارزقهم من الثمرات لعلهم یشکون پروردگارا من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی آب و علفی در کنار خانه ای که حرم توست ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند تو دلهای گروهی از مردم را متوجه آنها ساز و از ثمرات به آنها روزیده شاید آنان شکر تو را به جای آورند ربنا تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما على الله من شيء في الارض ولا في السماء پروردگار را تو میدانی آنچه را ما پنهان و یا آشکار میکنیم و چیزی در زمین و آسمان بر خدا پنهان نیست. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. حمد خدای را که در پیری اسماعیل و اسحاق را به من بخشید مسلما پروردگار من شنونده و اجابت کننده دعاست رب جعلی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا پروردگارا مرا برپا کننده نماز قرار ده و از فرزندانم نیز چنین فرما پروردگارا دعای مرا بپذیر رب نغفر لي والدي يوم يقوم پروردگارا من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را در آن روز که حساب برپا می شود ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار گمان مبر که خدا از آن چه ظالمان انجام میدهند غافل است نه بلکه کیفر آنها را برای روزی تأخیر انداخته است که چشم در آن به خاطر ترس و وحشت از حرکت باز می ایستد محطین میع رویم یا رودن دویم را کشیده سرها را به آسمان بلند کرده. حتی پلک چشم هایشان از حرکت باز میماند. و در این حال دلهایشان فرو میریزد و از اندیشه و امید خالی میگردد و انذر الناس يوم يأتيهم العذاب فیقول فیقول الذین ظلموا ربنا اخیرنا الى اجل قریب نجبه نو جئبا وتك ولت تبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال و مردم را از روزی چه عذاب الهی به سراغشان میآید آید بترسان آن روز که ظالمان میگویند گویند مدت کوتاهی ما را مهلت ده تا دعوت تو را بپذیریم و از پیامبران پیروی کنیم اما پاسخ می شنوند که مگر قبلا سوگند یاد نکرده بودید که زوال و فنایی برای شما نیست و سکنتم و تبین لکم کيف بیم و ضربنا لکم الامثال شما بودید که در منازل و کاخهای کسانی که بخیشتن ستم کردن ساکن شدید و برای شما آشکار شد چگونه با آنان رفتار کردیم و برای شما مثلها از سرگذشت پیشینیان زدیم باز هم بیدار نشدید وقد م مکرهم وعند الله مکرهم و این كان مک روم لی اززول آنها نهایت مکر و نگرنگ خود را بکار زدند و همه مکرها و توطعههایشان نزد خدا آشکار است. هرچند مکرشان چونان باشد که کوهها را از جا برکند فلا تحسبن الله مخلف وعدی رسوله این الله عزیز ذو انتقام پس گمان مبر که خدا بعد را که به پیام برانش داده تخلف کند چرا که خداوند قادر و انتقام گیرنده است یومت بدل الارض غیر الارض والسماوات و برزول الله الواحد در آن روز که این زمین به زمین دیگر و آسمانها به آسمانهای دیگری مبدل می شود و آنان در پیشگاه خداوند واحد قهار ظاهر می‌گردند و ترى المجرمين يومئذ مقرنين في در آن روز مجرمان را باهم در قل و زنجیر میبینی سرابيلهم من قطران و تغشا و تغشا وجوه همون لباس هایشان از قطران ماده چسبنده بدبوی قابل اشتعال است و صورت هایشان را آتش می پوشاند لیجزی الله كل نفس ما كسبت این الله سریع الحساب تا خداوند هر کس را هران چه انجام داده جزا دهد به یقین خداوند سریع الحساب است هذا بلاغ للناس ناس ولی انذرو ولی علمون انما هوائلله هو ودون ولی الذكر راول الألب این قرآن پیام و ابلاقی برای عموم مردم است تا همه به وسیله آن انظار شوند و بدانند او خدای یک و تا صاحبان مقضو اندیشه پندگیران